تکویر بسم الله الرحمن الرحیم بنا الله که بخشایند و با رحمت است ال شمس کو يرد که خورشید در هم پیچد و خاموش کردند و اذا نجوم کدرد و آنگاه که ستارگان بیفروخ شدند و اذا الجبال سییرت و کوهها به حرکت در آگهند و ایزا العشار ربطلت و شتران عابستن رها گردند و ایزا الوحوش حشرت. آنگاه که وحوش در یک نقطه جمع گردند و اذا البحار سجیرت آنگاه که دریاها آتش گیرند و ایذن نفوس زوجت. آنگاه که انسان با همسان خود قرین شود و ایذن موعودت سئلت در آن هنگام از دختران زنده بگور شده سوال شود بی ایذن قتلت به کدامین گناه کشته شدند و ایده السحف انگامی که نامهای اعمال گشوده شود و ایده السباق کشیقت. و پرده آسمان باز شود و ایده و انگاه که جهنم شعله برگردن و ایده الجنت ازلیفت. و بهشت نزدیک شود علمت نفس ما احضرت هرکس میفهمد که چه چیز حاضر کرده است فلا اقسم بالخنس قسم به ستارگانی که باز میگردند الجواری الکنس همانهایی که میروند و ناپدید میشوند واللیل اذا عسعس عس و قسم به شب هنگامی که پشت کند والصبح اذا تنفس و قسم به صبح آن هنگام که نفس زنان طلوع کند انه لقول رسول کریم که این قرآن کلام فرستاده گرامی جبرائیل است لي قوه عند العرش مكين نیرومند است بل در جوار پروردگار صاحب عرش مقام والا دارد بطائر فما امين در آنجا مورد اطاعت و امین است وما بمجنون بدانید ام صحبت شما پیامبر دیوانه نیست و لقد راه بالافق المبين او جبرائیل را در افق روشن دیده است و ما هو علی الغیب و او نسبت به آگاهی رساندن از غیب بخیلنی وما هو بقول الشيطان الرجيم القرآن سخن شیطان متروک نیست فاينه تذهب بسكنه و مرادت انه هو الاذ قول للعادين قرآن فقط پند ناميس برای جهانیان. لمن شاد آن هم برای هر کدام از شما که بخواهد بر راه راست و درست گام بردارد و ما الا این بدانید شما همان چیزی را میخواهید که خداوند آن پروردگار جهانیان اراده می کند راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم کاری از مؤسسه پیامبر محر و رحمت سلالله علیه و علیه و سلم